من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وآدمين وصلا الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المأسومين ومن نأس الدائمات على أداة المجمعين اللهم رحمنا وجميع المشهرين وارحمنا برحمتك ورحمة الرحمين آخرین مناسبتی کیی شما در بحث خودمون خارج شدین رفتین که واقعه زمانه یهد یا واقعه الهیات به شلون بعضی ازشون و تبع توقیحاتی که تا اینجا داده شد معلوم شد این بحث در مخصوصاً بحث آریه و یا آریه زمان باور هست یا نه همون قرن اول از اهل صحابه شروع شد و طب بعد از گفته ها دستگاه قضایی در حقیقت زمان آری رو دیدن و به لحاظ نقل هم این بباید سموره را حسن نقل کرد حسن بسری و شهرت پیدا کرد علالیه محاخده از تا ازی و در مساقه اهل آمن چه این که خود حسن هم بعد تراموش شد مطلب خودشون و کار یقول هوا همینه افلا آقای ما نهده اصلا نگوی اینجا زمان ندارش الا پنجتی که خودش نهده یعنی فراموش شاید رو گفت مطلب درگوست یه توضیحاتی راجع به این مطلب گذشت یه نکته ای رو چون ما دو احتمال دادیم یکی اینکه از باب حکم ولایی و افترخه ولایی این کار کردن یکی که از آقایه استحسان باشه تصویح حالی استحسان یه احتمال دیگه هم داده میشه که شاید به نظر ما ارجع احتمال سوم باشه این مناسبت یک، یکی دو ناصره مهم ولایی و اجتماعی با هم انشاءالله متعرض میشه یه احتمال هرچند این سنخه احتمالات هست و تا حالا من در مباغه سرکهی خودمون ندیدن میادار توضیح کدم این نافع به نظر ما لاخر به اندازه احتمال نافع نتیجه گیریست باشه با آبایم یه احتمال دیگه میدیم که این مثلتی رو که قضاق به قضاق زهری نقل کردن میشون یه هجم مرخوضا میگه چون افراد آیه میگرستن بعد منکر میشودن موطمئن طلب شده منشأ مشکل شد در درستاها قضایی این شرارت های مرزا و اعمال غیر صحیحشون منشأ رو سبیگر نظامن مستعیر این خلاصه هر پیست سناریو در باب خوزم یه احتمالی که من میدن این احتمال از هرمانو در اینجا به عنوان احتمال جاییگه هم کار بود داره اصولاً در فرق من ندیدم اصحاب از این راه غالبا وارد غالب بشن به نظرم راه خوبی و اونی که قادم بشیم که خوزات که قادم شدن بیدیم که زامنه نه من باب خرقی آدیل تقییم نبود من سابقا نهارم کردم فهم رو از تو خود قاضی هم فرید بود درکه مواد مشکل رو یا از بقاها میگرد فهم یا از خود حاکم و خلیفه میگرد یه سنت اینجوری جا بود این خود یک از تو کنید علا خلاف المعلوم حتی اتمن این که در نورمان گفته شده که در برس ید صالح برس شد متبکل که افراد جمع کرد اون معتصم بود افراد رو جمع کرد نیجا در همدرزیه های ها که اون بحث محروبی که از خجابا دست دوست بایده این بود که برمیگشتن به خواه ها که عبتی خواه که حاضر و سوکان جمعاقری میکرد مسایب مشکل رو به قطعه که اینجا شاید مرابشون مقام اثبات بوده نه مقام بود این پسار باید فرم برزه این به عبادت دیگر در بحث قضاوت نظرشون به مقام سبوت نبود نظرشون به مقام اثبات بود مقام سبوت یعنی پرخواد ولی نرسی مستقیه کسی تا آدیگرطه زامن نیست اگر طرف شد زامن نیست این مقام خرصان وقتی که زامن نبود چه به اگر رسید به اختلاف و به فرق دروان ا زامنیز شرحن نیست شرع اون نمیخواد بینه بیاره اگر دست بشه قاضی اون کسی که آاریه داده میگه نه خود میگه خودش متوعد بشه از این بوره اون مسترید میگه نظرش چون شرع ظالم نیست نمیخواد در این نقاب بشه در این رو مویی اون که آاریه داده بازها میکنه این چه قایده ای این چیزی میگه مردم شورا برقرار کرده احتمال داره دستگار قضاقی تو محامل قضاقت این کاری نه تو محامل این دستگار دو همه اینا دیدن های خیلی خب حق با شما از مدیر شما خب داره اعمال مردم طرف میشه دستگار قضاقی تصویل گرفت به عکس بکنه به مستعیر بگه بگیه بیا. کسی که آریه گرفته تبقیه این قاعده که گفتیم بیاره دستگاه قضایی وقتی توی این موارد زیاد شده به مستقیل گفت و که طرف شده چون شرارت مردم و خیارت مردم زیاد شد این کار را انجام داد، او از مستقیل خاص بگه. یه احتمال خوب دقیق میکنی پس منابراین این نبوده که دستگاه قضایی به عنوان تبوا بگیر مستقیل نیست با عنوان مقام اثبات میگفته نصفه ای زامنیست به اصلا نه مقام واقع یعنی نگه پس این قصه به دادگاه نرسید حکم مسئله پی نفسان من سآل آمن آریه دادم میگه آقا یه طلب شده حق با ایشان هست میگه بعد ایشون زامنیست ایشون چون یده شده امانیست مگر اثبات بشه طلب کرده به ایلا زامنیست مگر کسانی که قایل علریت بودن این اختلاف اینجوری پس اونایی که پرکانی درن زامنه به علریت خمسس اونایی که می گفتن زامن نیست و قایل امانتشون امانت, امانت دستش بوده و علریت قبول نکردن و اونایی که می گفتن زامن نیست بوشن شده امکان داره که در اینجا دستگاه قضایی این مقام اصبار گفتن مستقیل زامن نه چون مقام سه پس اما این بگیم از نظر شهی فتباشون این بود که زامن نیست وقتی به دستگاه قضایی میرسی چون دیدم مردم شرارت کردن ودایه و اماناتی و از بین بردن اینا گفتن پس تو برگه نبیان تو شاده بیان این احتمال شرط نیست احتمال ضعیفی نیست وقت درد شده فوقاها از رعی قضاست رو گرفتن خصوصا که روایت هم حسن بحثی تر کرده این احتمال هست و این بحث یه بحث کبروی هم داره ما سابقا یه مناسبت متعرضه این بحث هم شدیم شبیه این بحث دیگر نگره برمای متحریک رحمت الله علیه نرشتن که اگر فرض کردیم حالا عمر خلافتش برحق باشه و واقعا فرضیم متعصل حج و متعصل مشکلاتی در جامعه ایجاد کن خلیفه هر داشته رو تحریم بکنه این متعطان کانت حالا احضر رسول الله و انو قهر این رو جزو حقوق خلیفه بدونیم جزو حاکم اسلامی بدونیم حاکم اسلامی حق داره تشریعی که در یک برقی از زمان منجر به مشکلات شده اون رو برداره نهایت این بازداشتش باید موقت باشه نه دائمی با قول مروای اشکال به اهل سنته که این رو دائمی گرفتن این باید تحریم موقت به زمان و عمر میگیرن تا خلیفه بعدی که آمد باز بازو نظر بده باز تا خلیفه بعدی این حکم رو باز حکم ولایی موقت بگیرن میتونستن تا زمانی که عمر هست این حکم باشه بعدش برگردن به حکم اولی مگر اینکه حاکم جدید مثلا نراله این خلاصیه تری بود که ایشان در یک بیم داره مثل اصلا کشیدنی خودش که از آثارش ما در محل خودش در میداده که اینها اصلش این که گاهی وقتی یک حقوقی تو مرحله اجرا با مشکلاتی رو میشه اینو باید قبول کنیم چه بحث داره این مطلب اصلش حالا که در زمان ما پس در این نظام اسلامی بیان بگن دیه کافر چون در دیه کافر آراء متعددی هست بین علماء اسلام از تسابیه هست تا صفر اصلا دیه نداره از بالای بالا هست که تسابیه دیه کافر و مسلمانه تا اونجایی که اصلا دیه نداره صفه مثل ابن هست یعنی که اصلا ممتعای صفه اصلا دیه کلن هست نصف هست صرف هست. هست یک چیزی نزیدی یک دهان هست یک دوازدهانی مشهور یعنی از ده هزار درهم هشتر درهم خب این ممکنه در زمان ما که الان برزی ارتباط کیهانی عوض شده و کشورها با هم رابطه دارن ما اگر آمدیم مثلا در یک کشور اسلامی دیه کافر رو نصف یا سلس یا روب یا هر بود قرار دادیم اونا بیان به مقابله همین کار نسال اون سرمان های خودشون بکنه یا <تصحنت> بیان اصولاً از واح بین المللی که از سال این تشکیلات جهانی را افتاده از راه مجامعه برمولی مشکل برای نظام حالا اسلام میجاز بکنن حالا بحثم یا اگر موت یاد شد منجر به نوع فساده اجتماعی بگیم خب این امکان داره این بحثی نیست که انکارش رو کنه ممکنه هست بعضی از احکام در بعضی از مراهب همین متعطل حج رو که خب نوشتن که آمر مشکلشی بود اما متاتون نسا من در کلمات اهل سنت خیلی به وضوح ندیدم یه چیزایی در عرفتون نداره می قاهرش میشه فکر نمی‌خوام نمیدونم به هر حال توی بعضی از متون ما تعاصانی دروس نظری چیزایی اومده اما در کتب اهل سنت من لا اقل چیزی ندیدم اگرم حتماً ندیدم من میخوام الان انکار بکنم به هر حال هر خوندیم یک مشکلی پیش اومد مثلا این مشکلی که الان برای قضاوت پیش اومد سوال اینه که آیا می توانند اینها اون حکم رو بردارن مثلا حاکم بگه متعطان کانتا علاقه در اصول انا او حرم و همه ها بس مثلا الان این مشکل دیه کافر پیش آمد برای یک نظام اسلامی مشکل دوست کرد آیا میتونه حاکم بیاد بگه من دیه رو مساقی کردم برای این که اون مشکل حل بشه یه یعنی اصلا بحثی شعونه بگاه در ما متعرض شدیم آیا حاکم اسلامی با عنوان آلا هر طور بلات مطلقه قاعد بشیم اصلا آید نشیم با بلات محدود قاعد بشیم آیا حاکم اسلامی حق داره سوال این حکم رو برداره که آیا متحریم پیشنان بشنیمه که حق داره برداره ما به ذهن مانه کیمیان نمیشه این کاری کردیم این روشن میزن احکام شهر چون داره ملاقات واقعیت ملافات واقعی به خاطر بعض از مشکلات اجرایی به هم نمیخوره دقت بکن این در واقع یه مشکل اجرایی مشکل اجرایی الان در زمان ما هست ممکن در 10 سال دیگه نباشه دیگه سازمان ملل نباشه که از, از مشکل اجرایی برسونش که 70 سال قبل سازمان سازمان ملل نبودی مشکل اجرایی نبود ممکن است در 10 سال هم سازمان ملل نبازه مشکل اینه اینا مشکلات ما اسمش روشیم مشکلات اجرایی مشکلات اجرایی چون در ضرط امتصال و ضرط سقوط تحریف و غلق مشکلات اجرایی نمیتونه بیاد ملاکات اولیه رو به هم چون احکام شده به ما دارای ملاکات واقعی هستن ملاکات واقعی با بعض از مشکلاتی که در مرحله اجرا باش و میشی به هم نمیخوره دیگه این مفاصت هم نه همین نمی دی محدودیت ایجاد میکنه ببینید الان شما ثابر نگاه کنید مثلا فرض کنید 200 سال قبل 558 عقد ازدواجشون در دفتر ازدواج سلام نوشتن مثلا او باقرضوجه نمیشه یه اصلا دیگه باقرضوجه می میشه اون سلام داد هر کد برای خودشون خب بعد این مشکلات اجتماعی ایجاد کرد اینو منظمش کردن سر و اذا از ازن موضع ایجاد مشکل بوده ولی منو اجازه ندن تا کارش کنم خاصه ما این میگیم وقتی مشکلات اجرایی آمد مشکلات اجرایی از ظاهر اجرایی وارد حرکت نه خود نظام رو برداری دقت بکنه که هیچ تفاوت دو تا چیز داره شما مشکل اجرایی در بیه پیدا کردی تا وقتی که این مشکل میشه فرضش مسئول ما بدیم من میخوام بگم ما به تفاوت یا فرصم بیاییم از صندوق های دینه یه راهی دینه ای باره یه راهی اینطور نیست که لازم باشه فقط بریم قانون رو برداریم دو بسته چون مفروض کلام ماهی مشکل از ناحیه خود قانون نیست قانون خودش بی نفسی داره دقت میکنیم این از ناحیه اجرا پیش آمر خوب دقیق میکنیم تو مرحله یه و اجرا و پیاده کردن قانون ما به مشکل اون جوابش اینه ما بیاییم مشکلات تو مرحله اجرا حلش بکنیم فرصونی در این مسئله چون از نظر شرق مثلا فقه شیعه اگر آریه مشروط بود دیگه مشکل نداره زمان آوره ما به جهش به قانون رو برداریم. بگی ما تو مقام اصبات زمانت اصبات میکنیم بگی قانون داریم بعد از این به طور قانونی هر کسی یکی از شرایط آریه دادن این باشه که آریه رو به طور مضمون بده اگر به طور مضمون ندا تو مقام مزاری به نفرش نخواهد اینو میتونی محضوز بکنیم گوشنه نه اینکه ما بیاییم تو مقام اثبات بگیم آه در مقام اثبات مستقیل رو خوب میکنیم بقیق بکنیم ولو اگر تو مقام سبوت بود مستقیل رو زامن میم ترجم یه چی ممکن است قانون چون مرحل... این قانون تو مرحله اجرایش مشکل برپرسته خدا کار تو مرحله اجرایه ما ما اون اینه که اگر در مرحله اجرای قانونی با مشکل رو برو شد مشکلات اجتماعی پیش آمد اون مشکلات اجتماعی معناش این نیست که قانون رو برداریم بگیم انه او حرم همه حتی انه او حرم ما نداریم از تحریم و تحریم بیاد الله و رسول هیچ شائبه‌ای از خدا و رسول حق نداره بگه انا حر محمد حالا این مسئله به مشکلات بر خورد همون مشکل حج حرفش این بود که یک دسته تازه حج میان یا اینا احرام بستن از دور میان خاکا دود ناراحت چهره سوخته یک اینکه قردن اومدن عمره تنطو انجام دادن از عمره در اومدن لباس پوشیدن هم, هم رفتن تر تنیس شدن اینا به هم نمیخوره خب این که واقعا اشتباه در مقابل نص است خب البته این اندار کار است، خوبی لحظه شستی، این خود شخص ود ندارد شاد است، نیم مشروطه اجواء این، این کنیم یه، این نمیسازه، خب راسته نمیسازه، این، چون میگه توی مکه چون اومد در ده سالی که به هر بود تمام این ده سالم هری رفیشمون، هر سال دل نبود، من اولین کاری کرد نعیسما، حالیم نصف کد نه هری در این چهار سالی یکان سالی که میزنم. اومد در تاییه ده سال در هم سفرش حجر که سرزالفن در این سفر آخرش هم بود که آمد که دو سوز بعدش اون ابو لولوه اسمی کنه ابو لولوه است دخترش لولوه نامیه با تا تنیز تا لولوه نیست که بین ایرانی هم شد دخترش لولوه یعنی با اینوان به اسطلاح چیگه موروالی قرازم به هر حال ابو لولوه و حالا پیروزانم علا کلامه اصلاً توی این سفر فیوزان هم, هم راهش میره اصلا دوش دوش خلیفه را حیجرت به اورا آورده توسط همینقدر او فرست شد ابوبز الله کشته پوشیدان پوشیده به ابو نور شد. هم پوشیدش علاوه اینکه به ماکا چه همی سفرم هم یه صحبت پیش اومد و تو این تون سفرم بودا من میخوام واژه بحثش زیاد بشه خب این هر مش این بود که خب ما میگیم تو مکه یه عده قبلان عمره تنطو انجام دادن لباساشون پوشیدن تمیز تو خوابون را تو اطراف مکه کعبه اذا فاجا یابون آمدن لباس‌ها پاره پوره صورتها مثلا مجبور کثیف این دو تا مظهر با هم نمی‌خوره اونا هاجی باشه. باشه اینا هاجی باشه این و خب این چه دیگه اشداد در این مشکل اجرایی می. این مشکل در مغز این آقای خب تو اجازه دادن خب باشه پیغمبر جزء باشه این طبیعتا مگر نفسجی رو فکر کنه پیغمبر منتظر نمی‌ذاره که چه مشکل داره خب این دیگه مشکل اجرایی نیست این دیگه مشکل اجرایی نیست اسمش این مشکلی خلل در مغز بود وقتی پیغم برای اکرام اجازه دادن و لذان ارز کردیم از بعد از عمر الهی و هیچ سنی با ایجا موافقت نکرده میگه این سبه خود من هم تو روی توی مسلمه بودم تحجیبه یک از اون هم بود در صحبت میکرد کور بوزارمشون قینات سیاهی زده بود و یکی سیوری سریع مسلم هم همین حکسون و علی که فارسی می کشه باهامی اذه انجیل می گفت فارسی ابو گفت که عمره تونسو میشه انجام داد ما همیشه قبول نکرد عمرو ابو بود گفت ما حال قبول نمی کنیم چون عمره تونس قران بوده پیغمبر انجام بده هیچ کس حرم ندادم خدا پیغمبر تفسیر گیری کنه اصل اصل کلا بظون هیچ احدی از علمای اهل سنت با او موافقت نکردن چه دلیش همینه این دیگه مشکل اجرایی نیست اینو ذوق استثناست لزوم میگه مردم که میان توی هر اعمال حج انجام عمره انجام میدن از احرام در میان با همون شکل بمونن تا برن از همون شکل احرام داشته باشن تا که از خارج میان شکلشون به هم بگیره بخیر بخره <تصح> اونها لباس پوشیدن بچنگ عرق و اصل مکسر کردن همین چیز خب این نمیخوره میگه به همین نمیخوره این که خب اشتها تو مقبول این مشکل اجرایی اسمش نیست دیگه دهن این مشکل اجرایی میدینه اشتحال در مقابل نفسه و دو خود سونیام قبول نکردن ما که خودش داره خود سونیام زیربان ندارد اما اگر مشکل مشکل اجرایی شد به نظر ما حاکم حق نداره نمیتواند احکام الهی رو هیچ شد از خدا و رسول حقی در این جهد نداره که احکام الهی رو عوض بکنه بله حاکم میتونه محدودیت هایی ای ایجاد بکنه چرا چون محدودین است که مشکل مشکل اجراییه مشکلای های به قواه متعلیا فهمیده محدودیت زمانی داره در یک زمان هست در یک زمان نیست اگر در یک زمان یک مشکلی آمد اون مشکل رو حل بکنن تا این مشکل برداشته بشه نه اینکه با قانون الهی تلاقم بکنن انا او حرمه ما حتی انا اما این هست حالا این از این احوال اگر این توجیه رو که بنده عرض کردن اگر درست بشه این در حقیقت این بوده که قضاق آمدن گفتن وقتی پیش ما میانیم میگیم مستعی ازامن حکم فکری میخواییم مستعی ازامن میگیم حمله بر مقام اثباتی بخواییم یعنی این قضاق میگوستن آقا ازدار شرقی مستعی ازامن نیست درست شد شان گذاش امانیه لیکن اگر آمد این پیش ما از بس دروغ زیاد شده و شرارت زیاد شده ما بخاطر حفظ نظام بخاطر حقوق مردان حفظ بشه به مستقیل بگیم تو زامنی مگر بیانه بیانی به مستقیل بگیم تو زامنی مگر بیانه بیانی که طلب شده و اختیاری تو نبوده شده به تو زامنی و ما در مبارض متعدده از خیلی حالا همونی نیست ما بعضی از به بعید هم ما بعضی از مبارض مثلا ما روایه داریم اتحو المطلقات سلاسا پی مجلس با حفظ این روان سریعه خدا ما همی ورده که زن سه تلاقه رو نگینی چون شوهر داری این سه تلاقه از اون شیخ توسی این به باستانیشه این رو باستان منطرد شیخ توسیه از زمون هم به ما از زمون بیگه شیخ دو جایی نوارده حالا شکل می فهمه حالا باید باست مشهور شد از گفته اگر شما فهمیدیم مرد سومی زنش رسه تلاقه داده در مجلس باهی بازا شما میشونیم بگیریم اسمشون شما قاعده اعضام قاعده اعضامیم ما سویی قاعده اعضام که هم که توش رو بوده همچنان این قاعده اعضام که هم در مشروع داری شده نه مرحوم کلیمی رو بوده سوزه و نه مرحوم شیط سروع باید یکی توضیح مفصلی در مهدش از توی کسی توی خط بوده اصمال ماها نبوده حالا شیف به ذهن موار شده از توی کبر بجرد سوبردشون رو برد از اون برس هر دو این رواده نمفله اتق و المطلقات خلاصاً پی مجد تنباهه فهن نمانه رواده از رواده این رواده دیگه این هر نمیشه بگیری اون رواده دیگه میشه بگیری ما این یعنی اگر میدونیم این زن در یک مجلس واحد سه طلاقه هست میتونی بیری اما اگر یک سنی زنش طلاق داده میمیدونیم سه طلاقه در مجلس واحد دیگه نموده میتونیم می این الزمو ها تو مقام اثبات لازم نیست شما این های باطل هم نیازیات سنیازی ها طلاقه باطل دارن لازم نیست شما فحص بکنید که اگر شوهر این خانون رو روی خواهد ما طلاق داده یا نه روی طلاق باطل خودشه. پس این انزموه مهم رو بزنیم به مقام اثبات اون مطلقات طلاق سنفی مجلس انواحه در بزن مقام سبوت جمعه این دوره باید مقام اثبات در سبوت بکنیم. یعنی تو مقام اثبات بررسی نکنید نبید سوال بکنید که این زن که شوهرش جور طلاق داده دقیقا همچنان که خود سنیا اون زن رو میگیرن این از زمونه خود اهل سنت اون زن متلقه رو میگیرن شما هم بیکیم اون زن متلقه رو میگیرین تحقیق نتانیم، فحص نتانیم اما اگر جلوب شما سنی زن خیلق نجیزه و حصه طلاق چیه؟ اگر دیدیم به شما خودتون که طلاق باطله مخصوصا سه طلاق در مجزد واحد به خاطر یک مخالف با ظاهر کتاب شد از طلاق و مردتان این از طلاق و مردتان کاملا واضح این اکیبات طلاق زاده بشه رجوع بشه بعد طلاق یا ازدهاج بشه رجوع اضعاج یا رجوع ازدهاج یکی یا دوست واضح نهت میخونه بشه بعد مخالب طلاق پس سه طلاق در مجلس مجزد واحد مخالب با چتابه تکرک میکنیم وقتی مخالف با چتاب شد اصولا این طلاق باطله. بگیر فرم نبکنم مخواد شما شیعه باشین و سندی باشین این طلاق باطل از از در میانه همه سنداتم بعد با اون موافرم مثل اونه هست اون این طلاق باطل داری سواد در مقصد باطل داری این طلاق اما های از شما حال نیستیم بگیریم و ها به ذهن من این میاد که اگر ما جمع بین مقام سبوت رو اثبات بکنیم این مشکل حل میشه احتمالی سوم این مطلب در دستگاه قضایی به عنوان یک به اصطلاح حکم قضایی روی مثلحت جامعه جهتر آباده شده نه که حکم فقری بوده حالا پرد کنی این مطلب درست مردم در آریا ها تصرف کردن شرارت کردن مشکل دو جامعه آیا حاکم میتونه بگه زنان بر مستریر سؤال این مقدمات خبول ازرع و شروع رنما این مقدمات خبول جراب خیل این هم نمیتونه اگر حکم واضعی مستقیل زامن نیست به خاطر رفع مشکلات اجرایی نیتونه بگه مستقیل زامنه باید حاکم راه های دیگر رو پیش میگیره مثلا بگه هر ارز اجاره مثل عرض نکاح به نمیتونی یاد داشت. تا اشطلاف کم بشه هر کسی میخواد به به کسی آرین داده ببینید. و برای این که بعد با مشکلات برسورت نکنی شرط زمان هم توش بکنی میتونین کار رو این مشکل, نداره این مشکل نداره این مشکل نداره این یک قصه اجرالیست تا جامعه به حالت ارتضالش برگشت اگر برگشت میتونین قانون برداره این مشکل نداره این نیست که بیاد قانون رو عوض بکنه نیست، اما الان زامن مستقی و نیست اما الان دامنه این هم ای بود که مخواستیم حضب بکنیم که ما در فرح هم در عضی اعضباب به نظر ما این راه راه خوبیست ولی هم در عضی اعضب مشاکل اطلا برد یا خیلی از رو گذارن اسم بردن. این شام در مجرات توتیش یک توتیش اعضب این راجع به این موز یک خواهده دیگر یکی مرموم شیخ در اینجا مطرح فرموندن اشاره بشتن و یا قاعده مایوزمند سهی اکس هم دیده هر دان کلوی هم و این با قلاله اکس مونجبه کلوی سایو جزید همون اینجا هر داشون کلوی هستند. مایوزمند سهی اکس هم دیده فاصله مایوزمند سهی اکس هم دیده این مسئله رو به طبیه ارمو استاه فرمدن این قاعده ای نداره متسیله از رغایاته متسید هم نیست این رو مثلا به اندازه‌مواردش ناظران تو روایات متسید هم که این خودش قاعده اعدام یک امر اوغلادی این خودش فرع قاعده چون بعضی کتابا دینش ل قاعده اعدام به قاعده مایوزن اصلا خود قاعده مایوزن هر قاعده اعدام یعنی اگر شما اقدام کردید یه نفیه اقدام میکنید برای یه قرار که خودش زمانت آünü دید این اطلاعی اقدام بوداید که زمانت آگر نیست. اگر صحیح بود زمانت توش هست اگر صریع نبود زمانت توش هست. چون اقدام می چونها به زمانت دید فقط فرقش اینه اگر صحیح بود باید بدل جعری رو به شما بده اگر فاسد بود باید بدل حقیری رو به شما بده فرقشنید ماهای شما کتاب رو فروختین من با مثال میگم کتاب رو بگین به 100 اگر بیعشون سرطان انجام کردین به دادن کتاب تملیک کتاب بدین در مقابل 100 تومان یعنی اقدام شما رو تملیک کتاب مجانا نبوده به. اقدام شما رو تملیک کتاب به مقابل بوده به عوض بوده شما تملیک کردین کتاب رو به 100 تومان اگر بیعتون درست بود 100 تومان نشون میده اگر تو فاسد بود قیمتی کتابتون بازا سال و پنجازان سال و پنجازان رو شما اینه فرقی دو تا اینه ما به صحیحه یزمن به فاسده اینطوره. چون اگر صحیح نشد به همخور چون از کردیم هر چیزی یک حقیقی داره یک مجازی داره اعتباری داره اگر در جایی اعتبار درست نشد با برگرده به حقیقی این قاعده کلی ما بدل حقیقی داریم و بدل اعتباری داریم اگر بدل اعتباری ثابت نشد برمیگردیم به بدل به اصطلاح حقیقی پس بنابراین اگر من اقدام کردم بر یک ای که زمانت آور صحیح بود با مقابلشو بگیرم فاسدم بود با مقابلش حساب بشید. اما اگر اقدام کردم برای یک ای که زمانت نداره مثل هبه من یک مال رو به شخصی هبه کردم این اگر صحیح باشه چیز در مقابل نداره زمان نداره مال هم طلب هم شد. مال همونه ایچی برای من خایده اما اگر فاسد بود و اون زمان اتا اگر خودش موجوده باید رفت میکنه اگر خودش موجود نیست باید بده بشه اون اگر فاسد زمان در غیبه نداره در بیگ داره این یه قاعده است که در شهر آمده این شاهده تو اول اوال بحث به این شام را متحرمش میشین از که نقطه این قاعده قاعده اقدام نقهه اقدام ایست که ما که بسید به عنوان قانده در کتب فقیه احل سنت اطولت این قواعد در میان کتب احل سنت جاری شده بعد از اون هم به کتب ما راه پیدا کرده خب نه این که تعبدن اصحاب اجمالا قبول کردن از بس بسید این هر نه این ورش کلیت شرطن نه اون ورشید چون مرحوم شیف در اینجا مثال زده تصادفنه که از موارد کلیتش محلی اشکال هبه است، چون هبه صحیح زمان نمیاره. اگر شما چیزی رو بکره توی هبه کردین نه لازمه که اصلش برگردون نه لازم بدنش برگرد اگه طرف بشه بدنش اما اگه هبه فاسد شد اونم همینطور گفتن چون من ابدام کردم به دادن مال مدیانم اگه هبه فاسد بود اونجا هم زمان نداره چون سریع زمان نداره فاصله هم زمان نداره تلفظ میشه در لازم شده چون سریع هم زمان نداره من میشه شیخ اینجوری مثال آوردم در کلمه البته من امروز هم باز مخصوصا نگاه کردم امروز باز تمام دهک هوی جواهر باز از اول تا آخر نگاه کردم بهش تا نگذره چیزی شروع شده باشه بحث می‌گیری این بحث هوی فاصله زمان داره من نمی‌دونم که جواهر من نمی‌دونم نشودم توی فتاوا نگاه بکنم موسی منحاج دیگه. دیگران و هر حال توی جواهر من اما توی فتاوای شافعی ها کتاب الاشواح و نظاهر جلال سیوکی خودشم شافعی است اونجا داره که وقت نشبت الفاسد و قولان او بیان هست که هفه فاسد زمان داره هفهی صحیح نداره زمان داره فاسده لیکن الان شیخ در اینجا و کلمات و استاد مرموهای خویی در اینجا که چون میه کامده همه مضروقون ان ها گرفتن که زمان نداره میگم من در ان بلاغ مارش قهوه فقط جوانه میوکن فقط نشریه تو دیگه در جوانه من نیدانا میشه شو نخودرو که حسینن مطرح شده باشه مثلا در اینجا که شیخ مطلب رو ورده این رو به عنوان مضروقون ان گرفته که روی خاصه زبان نداره و این تعلیقاتی که من دیدم مثل روی روانه یا مثال آرخوی هیچ تذکری تنبهی به این گرد ندادن ظاهرش به این ما لاغل یا اثار ما این تلقیه به قبول شده لاغل این طوره. اما از در میان اهل سنت قالب زمان داری میگن هده صحیح یکی فرمودی زمان نداره اما اگر هده فاسد شد زمان داره من فکر بکنم تو فرصت نشد به کتاب شعافی توی این ما هاشیشم به چند کتاب ازجاد فرصت نکردم به کتاب شعافیه ها مراجعه بکنم احتمال میدن زمان و اعضای قاعده علیه ثابت کرده باشید فعلا نصدت نیمتونم بدم چون شواهد نشون نیمیدون دیلی برای زمان باشه. اگه به فاسد باشید احتمال میدن رو قاعده علیه هستن چون خود علیه قاعد ده مثل اینا. احتمال میدم احتمال قرمی میدم رو قاعده یه حدریت و قاعده حدریت هم به نظر آنون در جایی که تسریح مجانیست دلالت نمیکنه. من یه مقدار چون عبارت مرحوم شیخ و خوندی متعرض عبارتیشون میشه مقداری که الان متعرض شدی و بعد چون عبارتی رو که بله حالا بریم خود مطلب برگردیم درگردیم خصوصی ها اصل مطلب این دو تا مطلب بود که ما خارجه را کردیم یکی قاعده اقدام یا قاعده ما یوزمند صحیح وزن و یکی هم مساله عللियत از این قاعده ما یوزمند روایت داره بعضی مواردش در روایت آمده و اونجش همون قاعده اقدامه و قاعده عللियत هم از اصل نواقص ضعیفه و گفتیم که استادم هم قبول نفهمن اشار باشه و بعض از این اون مواصل هم که کی این اوغلایی از یه اوغلایی نیست از تعبدی شرعی اوغلایی اوغلایی در چه حدیه هر چیزی که انسان قرض بگیره بدون اجازه اگر من بیام بدون اجازه کسی مالش رو بگیرم بیا که خونه خودم در تلف بشن بعد این اوغلایی نیست این نقض اوغلایی است اما اگر خود از اون آریه گرفتم اوزن تو خونه تلف شد من زامن باشم این دیگه اغلایی نیست این تعبیلی شمعیست این قایدریت تمام درجات نیست. این اغلایی نیست این راجعه به این بسن و اما اصل مطلب این دو سا مثلت بود که درهاشی صحبت کردیم اما اصل مطلب آیا رشوه اگر کودی رو که انسان به قاضی داد به عنوان رشوه آیا معامل فاسده به اصطلاح آقایان و قاضی مالک نمیشه و باید برگردونه یا نه مرحوم شیخ از بعضی از معاصری که ما هم همه همه نشناختیم آبین که شهر نوشتن آقای چیز اسم این آقا رو نبردن. از بعضی از معاصری معاصر خودش نر فرموزن یک عبارت بین اینجور حالا من امیده مرابیشم که وفی کلام بعض معاصری ان احتمال عدم زمان فرشوه مطلقا غیق و که رشوه اصلا توی زمان نباشه معلله نقطش هم این گفته به تصریف المال که علیه ها مجانه چون مالش این پول مجانی داده به نفوه ها کنه کل پول داده حالا حضبش باطل بوده آل ولنها تو شهر محاوزه و مالا یزمن به صحیحه لا به فاصله. حالا این عبارتی بوده که برامون چه اخنوشتن؟ و اشکالی هم کرده البته در کتاب مثل مستنب اتمال مرموم نراغی و استاد مرموم شده که در بعضی از صورتش در زامن بودن اشکال کرده اما در کلش پیدا نشده در جواهر هم چون مرموم شده در سو جواهر جوار هم حاضر میشده حالا شاده اخترام در جواهر هم یک بعضی عبارات مشعره به عذرم زمان در رفی خروج داره اما این نیست در کرده. باید که از نزد واسه نرفره که از نزد واسه نرفره فعلا نمی‌دونیم مراد ایشون چه بوده حالا آیا زمان هر چیا نیست آیا تفصیل بدی برام مرحوم شیخ دو صورت کرده یک صورت که رشته باشه گفته زامنه یک صورت که هدیه باشه فهمید در که هدیه باشه دیگه زامل نیست به خاطر این که این حدیه هدیه به اصطلاح فاسده است و در هدیه صحیحه زمان نیست در اینجا هم نیست خود شیخ در اینجا اینطور محصر فرمدن و بعد که در هدیه میگن که نیست و کونها من از صح این قول در روالس کرشیه صحته ایشون میگه این که صحته نمایدون به علا حرمت از صحته اینه حرامه نه این که اگه طرف شد باید بدرشم بدیم این هم جواب شد و عموم و علالیت نگه علالیت هست جواب مختصون به غیر الید المتفره علال تسریط المجانی این مختص این تخصیص خورده عموم و علالیت تخصیص خورده در مویه که مجانی باشه یادی که من منشعش تسریط مجانی باشه اون رو دیگه شامل نیم دیگه تسریط مجانی کرده ولی را لایوز منادر حبت الفاسده فی غیر حاضر مخام این هم خلاصه نظر شکل پس شیخ دو صورته مرحوم استاد سه صورت کردن یک صورت که پول بده به ازارشه فهمیدن این حرام است پولم مالک نیمیشه و پول باید برگرم صورت دوم رو معامله محاباتی گرفتن میاد به بازی میگه آدم من این خونه ده رو توی یک میلیون میخوشم به شرطی که شما به نفع من حکم کنیم در اینجا ایشون فهمیدن کار حرامه لیکن معامله درسته چون شرط فاسد هست این شرط ولیکن چون شرط فاسد مفسد نیست معامله درسته این صورت دوم صورت سوم مثل مرمشه حدیگه در صورت حدیگه داعی و هنگیزه اونه که به نحوه بخم بکنن در اینجا به شون فرموندن که زامن نیست چون حقه فاسده هست و در اصولاً لا لایوزمن به ها، فلا فلایوزمن به فاسده ها خوشن شد ایشون یک صورت در شیخ اضافه کردن و اون معاملات محاباتی لکه تا اونجایی که من دیدم از هراشی با شیخ غالبا موافقن که در صورت هدیه بودن دیگه زامن نیست این به مطالبی رو که مرحون شیخ به ذهن بنده سوابت اصلا اگر در تمام سوال هم باطل باشه فاسه حرام باشه و هم فاسد باشه. این شرطی که فردا